شنوتو با افتخار تقدیم می کند کتاب شب سلام ارز میکنم حضور شما همراهان همیشگی برنامه کتابشان امشب با بازخانی رمان رومان ارزشمند بینمایان اثر نویسنده بزرگ فرانسه ویكتور روگو در خدمت شمای دعوت میکنیم شنونده اولین قسمت آن باشید غروب روزی در اکتبر سال 1815 مردی 40 ساله و تنومند با سر و وضعی ژولیده و خاکالود و تبروردوش وارد شهر دیهنی شد مرد که لباسی زرد و موی بلنداش به شهرداری رفت پس از چند دقیقه بیرون آمد و راهی غذاخوری بهترین مسافرخانه شهر شد و غذا و جایی برای خواب خواست صاحب مسافرخانه از او پرسید پول میدهید مرد گفت بله پول دارم اما صاحب مسافرخانه پسرکی را به شهرداری فرستاد و وقتی پسرک برگشت به مرد گفت نمیتواند به او غذا و جا بدهد چون میداند او کیست نام او ژان والژان است جان والژان به صاحب مسافرخانه التماس کرد که خسته و گرسنه است اما ای نداشت این بود که در خیابان اصلی به راه افتاد غمگیم بود و احساس خفت میکرد آن شب به کافه دیگری هم رفت اما خبر ورود او در شهر پخش شده بود و کسی به او جاو و غذا نمیداد جانبال جان حتی برای گذران شب به زندان شهر هم مراجعه کرد اما فایده ای نداشت در یکی از خانه ها را نیز زد اما صاحب خانه میخواست با او را بکشد این بود که بالاخره بعد از پرسه زیاد از خستگی روی نیمکتی سنگی دراز کشید. پیرزنی که از کلیسا بیرون می آمد پرسید: "چرا اینجا خوابیدی؟" ژانوالجان مشکلش رو به او گفت. پیرزن به خانه کوچک اشاره کرد و گفت: "برو در اون خونه رو بزن." درست قبل از اینکه ژانوالجان در خانه کوچک اسقف 85 ساله دینی ای را بزند، خدمتکار اسقف سر میز غذا به خاطر گفت موقع خرید برای شام تو شهر از مردم شنیدم که یک فراری خطرناک به شهر اومده ممکنه اتفاق ناجوری بیفته در خونه همیشه وازه اگه آله جناب اجازه بدن و بیارم و به همه در آن بزنیم در همین موقع والجان در زد اسقف گفت بفرمایید در خانه چهارتاق باز شد و ژانوالجان با نگاهی خشن و بیادبانه وارد شد خدمتکار اسخف از ترس میخواست جیغ بزنند مرد اسمش را گفت و گفت محکوم و 19 سال در زندان بوده چهار روز پیش آزاد شده اما هیچکس او را راه نداده و پرسید اینجا مسافرخانه است. پول دارم اسخف مثل همیشه به خدمتکارش گفت مهمان دارند بشقاب نقری بیاورد و های نقره را روشن کند از جانوالجان میز خاص بنشیند و با آنها غذا بخورد جانوالجان باورش نشد دوباره گفت که او محکوم سابق است و خاص جایی برای خواب در تویل به او بدهند و باز گفت پول هم دارد. اما اسقف دوباره گفت تختی برای او در نمازخانه آماده کنند بعد رو به جانوالجان کرد و گفت لازم نیست پولی بدید من کشیش هستم و اینجا مکانی مذهبیه شما هم خسته و گرسنه بو رنج کشیده هستید پس قدمتون روی چشم جانبال جان مثل قحتی زده شام خورد بعد از شام وقتی اسقف او را به نمازخانه میبرد آنها از اتاق به اسقف گذشتند و جانبال جان خدمتکار اسقف را دید که ظروف ای را در گنجه بالای سر اسقف گذاشت آن شب جانبال جان برای اولین بار روی تخت خوابید و زود خوابش برد پدر ژان والجان هر از کار بود و هنگامی که ژان والجان کوچک بود از درخت افتاد و مرد. مادرش نیز در اثر تب مرد. ژان والجان را خواهرش که هفت پسر و دختر قد وین قد داشت بزرگ کرد. ژان والجان درس نخواند و هر از کار شد. و وقتی 25 سالش بود، شوهر خواهرش نیز مرد و او سرپرست خواهر و بچه های او شد. او و خواهرش کار میکردند اما مزد کم آنها کفاف زندگیشان را نمیداد تا اینکه در زمستان سختی او کار پیدا نکرد بچههای خواهرش گرسنه بودند این بود که یک شب شیشه یک مغازه نانوایی را شکست و قرص نانی برداشت و فرار کرد اما نانوا بیدار شد او را دید و تعقیب کرد و با دستی خونالود دستگیر کرد دادگاه ژان والژان را به پنج سال حبس محکوم کرد وقتی با و زنجیر او را میبستند تا به زندان طولان ببرند گریه میکرد. در زندان همه گذشتهاش را فراموش کرد. فقط یک بار در زندان شنید که خواهرش در محله فقیر نشینه سنسلپیس با یک بچه کار و زندگی میکند. اما کسی نمیدانست برای بچه های خواهرش کجا هستند. سال چهارم از زندان فرار کرد. اما دوباره دستگیر شد و این بار به سه سال زندان محکوم شد. در ششمین سال باز فرار کرد که به پنج سال زندان دیگر محکوم شد. در دهمین سال برای سومین بار فرار کرد اما باز دستگیر و به سه سال زندان دیگر محکوم شد. وقتی پس از 19 سال زندان به خاطر دزدیدن گرسینان بالاخره آزاد شد افسرده و سنگدل شده بود. 19 سال بود که دیگر گریه نکرده بود. البته خواندن و نوشتن را در زندان آموخته بود چون احساس میکرد هرچه بیشتر یاد بگیرد کینش نسبت به جامعه بیشتر میشود به علاوه در زندان با کارهای طاقت فرسا قوی و زورمند شده بود و گاه مثل اهرام با پشتش بارهای سنگین را بلند میکرد و برای فرار یاد گرفته بود که به راحتی از ساختمانی سه طبقه بالا برود www.shenoto.com شب، دو ساعت پس از نیمه شب ژان جان با زنگ ساعت کلیسا بیدار شد بعد از یکی دو ساعت که با قد کرنجان رفت بالاخره با احتیاط زیاد بالای سر اسخوف رفت و از گنجه بشقابای را که دیویز فرانک دو برابر پولی که در مدت 19 سال در زندان جمع کرده بود میارزید برداشت و به نمازخانه برگشت و از پنجره فرار کرد صبح خدمتکار اسقف وحشت زده به او گفت که مهمانش ظروف نورایی را دزدیده است. اما اسقف فقط گفت ظروف چوبی که است. تو اونا غذا میخوریم. اسقف با خدمتکار و خواهرش سپانه میخوردند که در زدند. و لحظه بعد فاسبانها در حالی که جانبال جان را گرفته بودند ظاهر شدند. فرمانده آنها سلام نظامی داد و گفت علی جناب و تازه آنجا بود که ژان والجان که کشیش در حقیقت اسخوف است اما قبل از اینکه فرمانده ها گزارش دزدی را بدهد اسخوف جلو آمد و گفت او oh, شما هستید پس چرا یادتون رفت دنیا را ببرید ژان والجان بوتش و پاسبانها که دیدند انگار خود اسخوف ظرفهای نقره را به ژان داده است ژان را رها کردند و رفتند سپس اسقف به ژان گفت یادتون باشه که از این ظروف استفاده کنید و آدم درست کاری بشید ژان والجان برادرم شما دیگه به بدی تعلق ندارید من روح شما را رو خریدم و به خدا هدیه کردم آن روز ظهر ژان والجان از شهر بیرون رفت سرگردان و گرسنه بود خشمگین بود اما نمیدانست از دست کی؟ نمیدانست جا خورده یا تغییر شده است. با این حال گروب آن روز در سفرسخی آنجا روی تخت سنگ نشسته بود که پسرک شادی نزدیکش آمد. پسرک نوازنده سکایش را بالا می و می گرفت. اما سکه چه سوی از دستش لغزید و جلوی پای ژان والجان افتاد. جانوال جان فوری پایش را رو روی سکه پسرک که بعدن فهمید اسمش پتی است گذاشت. پتیژروه زور زد پای جانوال جان را کنار بزند اما نتوانست. این بود که به گریه و التماس افتاد. و وقتی دید فایده ای ندارد گریه کنون رفت. چند دقیقه بعد جانوال جان چشمش به سکه افتاد و به خود لرزید. از جا پرید و در داش دنبال پسرک گشت. اسم پسرک را صدا می زد و میدوید به کشیشی رسید و وقتی فهمید او نمی‌داند پسرک که سرک کجاست به او گفت پدر بگید منو دستگیر کنم من دزدم کشیش از ترس فرار کرد چند دقیقه بعد جانوال جان برای اولین بار پس از 19 سال به گریه افتاد فانتین از توده مردم بود در مونترو سرمر به دنیا آمد و بدون آنکه خانواده ای داشته باشد با فقر زندگی کرد و بزرگ شد پانزده ساله بود که به دنبال سرنوشتش به پاریس آمد آشق دانشجوی هوسران و پولدار به نام تولومیس شد که صورتی پرچین و چروک داشت و کم کم داشت موهایش میریخت دو سال بعد یک روز تولومیس با فانتین رابطه کرد فانتین آن روز زار زار گریه میکرد او زندگیش را آشقانه نسار طولومیس کرده بود و از او یک بچه داشت ده ماه بعد وقتی فانتین دید که دیگر از شدت فقر نمیتواند در پاریس بماند و کسی را هم ندارد تا از او کمک بخواهد دختر کوچکش کوزت را برداشت تا به شهرش برگردد و کاری پیدا کند همه ها و وسایل زینتیاش را فروخت اما غرزهایش را که داد فقط هشتاد فرانک برایش ماند وقتی به شهرش میآمد سر راه در دیکده منفرمی به مسافرخانهی رسید که خانم و آقایی به نام تناردیه آن را میگرداندند خانم تناردیه زن سی ساله بود. فانتین در بیرون مسافرخانه کنار خانم تناردیه نشست و سر صحبت را با او باز کرد و وقتی دید دختر سه ساله اشکزت با دخترهای کوچک که خانم تناردیه بازی می کند فکری به ذهنش رسید. به خانم تناردییه گفت که نمیتواند هم دخترش را نگه دارد و هم کار کند و از او خواهش کرد دخترش را برایش نگه دارند تا همراه دختران خانم و آقای تناردیه اپونین و آزلما بازی کند آقای تناردییه که از داخل مسافرخانه به حرفهای آنها گوش میداد پیشنهاد او را پذیرفت اما شرط گذاشت که ماهی هفت فرانک بگیرد به علاوه باید پانزده فرانک هم برای مخارج اولیه و پول شش ماه را هم پیش میداد فانتین پذیرفت و کوزت را پیش آنها گذاشت و گریه کنان رفت بعد از رفتن او آقای تناردیه به زنش گفت فول بدهی که داشتیم جور شد تو و دخترات تلموش خوبی هستیم قبلا گروبان ارتش بود از آدمایی که پس از جنگ ها وین و زخمی ها دنبال قناعیم میگشت تناردیه آدمی بدهکار بود بعد از اینکه لباس های قشنگ کوزت را هم فروخت کم, کم احساس کرد دارد به خاطر انسانیت از کوزت نگهداری میکند. و همین جهت رفتارش با او عوض شد. لباسای کهانه بچه هایش را تن او کرد و کوزت مثل سگ و گربه ها زیر میز غذا میخورد. تناردیه هنوز یک سال نشده در نامه ای از مادر کوزت پول ماهانه بیشتری خواست. در سال سوم باز هم پول بیشتری خواست که فانتین داد. در سال پنجم، کوزت کلفت آنها شد و زن تناردیه دائم کوزت را کتک میزد. کوزت لاغر و رنگ پریده شده بود. از شش صبح تا شب، باید کارهای مسافرخانه را میکرد و شب و روز با دستان لاغرش از چشمه که یک روب از مسافرخانه دور بود، با سطل آب آشامیدنی می آورد. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب اولین بخش تنظیم رادیویی رومان بزرگ بینوایان نوشته ویکتور هوگو شاعر و نویسنده فرانسوی برای شما قرائت شد امیدواریم مقدمه خوبی باشد برای ادامه این همراهی شما با ما خدا نگهدم. منتظر بخش بعدی این پادکست باشید www.chnotol.com